نام مهربان سلام افسانه ها در ادبیات منصور و منظوم ایران، جایگاه ویژه ای دارند، تنوع روانی کلام و جذابیت از ویژه های افسانه های ایرانیه کچل یا کچرک، یکی از جالبترین و محبوبترین و اسیلترین چهره ها در افسانه های ایرانیه که نماد فرد محروم و زجردیده اجتماعیه. یکی از ویژگی های مهم کچل در افثانه های ایرانی آسون گرفتن زندگی و زیرکی در حل مشکلاته. به طوری که این نوع برخورد یعنی آسون گرفتن زندگی و زیرکی خاص کچل خوششانسی رو به همراه داره. در واقع کچل با زیرکی علیه نائالالتی و شر مبارزه میکنه و در بین شخصیت های افسانه های ایرانی جایگاه و اهمیت ویژه‌ای داره در برنامه هزار افسان افسانی کچل و تاجر خسیص رو براتون نقل میکنم برگرفته از کتاب افسانه های کچل به گردآوری محمد رضا شمس امیدوارم کچل افسانه ما بتونه شما رو چند دقیقه سرگرم کنه با شنیدن ماجراهای اون لذت ببرید روزی روزگاری پسرک کچلی بود که برای یه تاجر خسیص و ظالم نوکری میکرد تاجر هر روز بیست و چهار ساعت تموم از کچل بیچاره کار میکشید و شب آخرین روز هفته اونو با مقداری نون خشک و بیات به خونش روانه میکرد یکی از شبهای آخر هفته که کچل مزدش و گرفته و راهی خونه بود پسر کوچیک تاجر با اون همراه شد و به خونه یه کچل اومد. ننه کچل هر بار که پسرش به خونه میومد و مقداری نون خشک می آورد، اونو با آب نرم میکرد. اون شب کچل خیلی احساس گرسنگی می کرد، و به همین علت نون خشک رو به دندون کشید و شروع کرد بخوردن که یه دفعه یکی از دندوناش شکست و آه و نالش بلند شد. پسر تاجر که حواسش به کچل بود، تا آه و نالیونو شنید گفت هچل و مچل نخودی کچل ننه یک کچل که دید پسرش از درد ناله میکنه و اون وقت پسر تاجر اونو مسخره میکنه ناراحت شد و با عصبانیت به پسر تاجر گفت برای چی میخندی؟ مگه شکستان دندونم خنده داره؟ وزیر لب گفت پسر پرو پسرم هم داره میکشه اون وقت اون بهش میخند و مسخرش میکنه. پسر تاجر بی به کچل و ننی کچل دوباره شروع کرد به مسخر کردن کچل. مچل کچل و مچل نخودی کچل. کچل که دیگه طاقت این مسخره بازی ها رو نداشیه رفع اصبانی شد و یکی که نون و خشک به طرف پسر تاجر پرد کرد. بعد نون خشک محکم به پیشونی پسرک خورد و اونو شکافت پسر تاجر با ناله به طرف خونشون دوید تا پدرش رو از این اتفاق باخبر کنه تاجر با دیدن پیشونی خونین پسرش با دستباشگی پرسید چی شده پسرم چی شده چه کسی این بلا رو به سرت برده پسرک با گریه جواب داد کچل کچل نوکره تو تاجر ناراحت شد و چند نفر رو به خونه کچل فرستاد کچل از ترس پنهان شد آدم های تاجر خبر بردن که بله کچل فرار کرده تاجر با خودش فکر کرد چند روز که از این موضوع بگذره با زبونی اونو بکار میگیرم بعد میدم اون قطر اونو بزنن که جونش بالا بیاد چند روز بعد تاجر کسی رو بخونه یه کچل فرستاد و به اون گفت گذشته ها گذشته حالا دیگه بیشونی پسرم خوب شده پاشو بیا سر کارت من و پسرم اهل گذشتیم حالا یه چیزی شده و رفته دیگه بیا بیا که کلی کار داریم کچل با اون همه زرنگی نفهمید تاجر براش چه نخشهی کشیده از طرفی چاره ای نداشت باید کار میکرد و یه جوری نون به دست میابردان برای همیشگه نمیتونست توی خونه پنون بشه به همین دلیلم به خونه یه تاجر رفت و دوباره کارشو شروع کرد روزی از روزها کچل که از کار زیاد خسته و کوفته شده بود رفت توی استبل تا کمی دراز بکشه و استراحت کنه تاجر که به دنبال چون این فرصتی بود سه نفر از نوکرهای خودشو سراغ کچل خلست نوکرها کچر رو که توی کیسه انداختن یراس رفتن سراغ مرد تاجر رو گفتن ارباب ارباب اینم کچل حالا چه دستوری میدیم تاجر خنده کرد و گفت خودم میدونم باش چی کار کنم شما بریم به کارهای دیگه برسیم و اونقدر تاجر با مشت و لگت به جون کیسه افتاد و اونقدر زد که کچل بیهوش شد تاجر وقتی دید دیگه صدایی از کچل در نمیاد نفس راحتی کشید و با خودش گفت ها خیلی مرد ولی عجب جون سختی بود این کچل هلا بهتره یکمی استراحت کنم بعد سر فرصت جسدش رو یه جایی پنهون می کنم آخوه چقدر خست شدن تاجر اونقدر از زدن کچل خسته شده بود که تا دراز کشید و پلکاش رو هم گذاشت به خواب فرو فروره. کچل که جون سخت بود با اون همه کتکی که خورده بود هنوز زنده بود تا صدای خور و تاجر رو شنید با زحمت زیاد از کیسه بیرون اومد. مقداری گرد بیهوشی پیدا کرد و ریخت توی بینی تاجر و اونو انداخت توی کیسه. حالا بقیهش رو کچل کچه ای ما به نوکرها گفت های با شمام این مرده که توی کیسر اونقدر بزنین تا جونش بالا بیاد. و بعد با صدای رسا گفته حالا دیگه پیشونی پسر منو زخمی میکنه بزنیدش. حالا اینو بگم که نوکرها به کچل شک کرده بود. آخه عمری در کنار اربابشون یعنی مرد تاجر زندگی کرده بودن و به ظاهر و رفتارش آشنا بودن ولی از اونجایی که دل پری از مرد تاجر یا همون اربابشون داشتن خودشونو به نفهمی زدن و حسابی به جون تاجر که تو یکیسه هنوز تو خواب بود افتادن و حالا بزن و کی نزن خلاصه بعد از اون همه زدن کیسه پاره شد و تاجر با هیکلی له لورده بیرون افتاد نوکرا پاپ فرار گذاشتند و کچل هم در حالی که میخندید از اونجا دور شد تاجر بعد از یک هفته از بستر بلند شد و خروسی رو برداشت و نزد قاضی شهر رفت و ماجرا رو برای قاضی تعریف کرد قاضی هم داروگر رو صدا زده گفت کچل باید صد دینار جریمه بشه داروگه با تحچه پرسید صد دینار قربان؟ قاضی جواب داد بله صد دینار باید تمام و کمال به تاجر بده گفت گربان اون سد دینارش کجا بود بهتر یه مجازات دیگه براش تعیین کنید البته،, البته جسارت بند رو میبشید قاضی فکری کرد و گفت سیار خوب اون باید یک سال تموم برای مرد تاجر کار کنه بله اینو که دیگه میتونه ها بله کچل باید یک سال تموم برای مرد تاجر کار میکرد. تاجر از اون خواست زمین زمینو شخ بزنه کچل از صبح تا شب گروسته و تشنه زیر آفتاب کار میکرد و عرق میریخت بدون اینکه دست مزدی دریافت کنه تا یه روز کیش کچل به چیزی گیر کرد کچل زمینو کند و با تعجب کوزه پر از طلا دید که مثل خورشید میدرشه فوران کوزه پر از تلا را برداشت و به طرف خونش براه افتاد اما از بخت بد کچل زن تاجر این ماجرا رو دید و فوراً به نزد شوهرش رفت و گفت ای مرد چه نشستی کچل یه عالمه سکه تلا برداشت و رفت تاجر با تحجب پرسید سکه تلا؟ کچل؟ زن جواب داد بله سکه طلا خودم دیدم باید هر شده اونا رو از چنگش در بیاری تاجر به جواب داد البته که در میارم این پسر یه کچلو چه به سکه های تلا اون حق منه نه اون گداگ بینبا بعد نشستو فکر که چجوری سکه ها رو از چنگ کچل افثانی ما در بیاری. تاجر فردای اون روز کچل و صدا زده گفت آه میبینم که پسر خوب و زحمت کشی هستی دوست دارم یه جورایی مقداری پول توی دستت بذارم تا تو هم سر و سامونی بگیری تا کی میخوای نوکری منو بکنی با ها؟ بابا تو هیچ به فکر آینده خودت نیستی اصلا اصلا بیا یه کاری کنیم کچل با تعجب پرسید چه کاری؟ تاجر گفت، من میگم ما هر دومون یه دروغ بگیم، دروغ هر کسی بزرگتر و باور نکردنی تر بود، اون وقت، اون وقت صد سکه برنده است. تاجر لبخند زنان پرسید، چطوره قبوله؟ کچل فکری کرد و گفت، باشه قبوله ولی، تاجر پرسید، ولی چی؟ کچل گفت، ولی باید این قرار رو روی کاغذ ثبت کنیم تا اگه من برنده شدم، تو نتونی زیر اون بزنی؟ تاجر خنده ای کرد و گفت، <تصفيق> من زیر قول و قرار اون بزنم، نه، نه، ولی باشه، بذار خیالت راحت باشه، من منویسم و انگوش میزنم، راست میگی، راست میگی، اینجوری بهتره، بعد هر دو قرارشون رو نوشتن و دادم. کچال که خیالش از این بابت راحت شده بود، به تاجر گفت، جناب تاجر، من حاضر و آمادم تا دروغ بزرگ و باورنکردنی تو رو بشنوم. تاجر که قبلاً درباره دروغش حسابی فکر کرده بود، بلا گفت، تو در بزرگ من یه یابوی بزرگ داشت، یابو اونقدر بزرگ بود که هیچ طویلهی توی دنیا پیدا نمی‌شد که بتونه اونو. اونجا نگه داره، فقط توی آسمون یه طویلهی بود که پدر ناچار بود، اون یابور رو اونجا نگه داره. وقتی حرف تاجر تموم شد کشل گفت، بله، بله، درسته. پدر من پاهای خودشو روی رنگین کمان می و بالای آسمون میرفت. اونجا طویلهی درست کرده بود، بندازه یه وجب که هرچی یابو توی دنیا بود در اون جا میشد. پس خدا بیامرست پدر بزرگ تو هم یابوی خودش توی طویلی پدر بزرگ من میذاشت حالا ببین طویلی پدر بزرگ من چقدر بزرگ بوده که ست تا از اون یابوی که تو میگفتی توی اون جا شده بود تاجر که دید دروغ کچل افسانه ما از دروغ اون ست ها بار بزرگتر و باور نکردنی تره گفت دروغ هر دومون بود کچل با لحن اعتراض گفت دروغ تو کوچیک بود نه دروغ من تاجر هم با عصبانیت گفت 'نخیر خیر که کچل دروغ هر دومون بود خلاصه چرا بحث اونا بلای رفت اونا مجبور شدن پیش قاضی شهر برن تا در باره اونا قضاوت کنه و بگه دروغ کدومشون بزرگتر و باور نترانی تره تاجر بار اول برای اینکه قاضی به نفع اون بده یه خروس عنوان رشوه آورده بود بار دوم هم برای اینکه به قاضی بفهمونه رشوه میده قبل از هر چی شروع کرد به صحبت کردن درباره خروس کچل که فهمیده بود بین قاضی و تاجر راضیه رو به تاجر کرده گفت ای تاجر چرا اینقدر خودتو عذاب میدی و از خروس حرف میزنی به من میگن نخودی کچل. نمیتونی کاری کنی، چون من از تو اثر انگشتو و نوشته دارم، زود باش، زود باش، ست سکه منو بده. <تصفح> تاجر که چاری جز دادن صد سکه نداشت تا صبح فردا از کچل ای ما محلت خواست و کچل هم قبول کرد. تاجر به خونش برگشت و به زنش گفت، <مم> زن؟ خوب گوشاتو وا کن ببین چی میکن فردا صبح وقتی کچل اومد تا صد سکه رو بگیره با و زاری بهش بگو تاجر مرد زن لبش رو گزید و با نارتی گفت وا خدا نکنه اینشالا که صد سال تاجر کلام زنش رو کرد کرده گفت حالا که نمردم تو فقط بگو شوهرم شب مرد اون وقت کچل که تیرش به سنگ خورده برمیگرده و میره پیکارش. کارش زن با خوشحالی گفت ها فکر خوبی کردی مرد آخه چرا باید بیخودی صد سکه بسته رو بدیم به اون کچل پاپتی خلاصه روز بعد کچل به در خونه تاجر اومد تا صد سکه رو ازش بگیره کچل در زد زن تاجر با آه و نال در رو باز کرد و با دیدن کچل شروع کرد به گریه زاری کچل تومد چیزی بگه زن تاجر با گریه گفت شوهرم شوهرم بیجاره من دیشب عمرشو داد به شما وای هم رو دوست داشت از تو تعریف میکرد بیچاره دیشب خوابی تو دیگه بیدار نشد که نشد میبینی میبینی کچل جان چه بدبختیه بزرگی نصیبمون شد شوهر بیچاره من کچل که فهمیده بود این یه نقشه است برای ندادن سکه ها گفت خدا رحمتش کنه ما سالهای سال با هم بودیم مثل اینکه دیروز میدونست رفتانیه زن با تحجب پرسید میدونست چجوری؟ کچل جواب داد چون وسیعت کرد اگه مرد من بیام و اونو قسل بدم کچل بعد از این حرف در حالی که اشک میریخت سراسیمه می وارد اتاق شد تاجر روی تخت بی حرکت دراز کشیده بود و تکون نمیخواد روست مثل مرده کچل به زن تاجر گفت زود باشین زود یه باشی دیگه پر از آب روی اجاق بذار زن مردد موند کچل گفت زود باشین به وصیت مرده باید عمل کرد زن مجبور شد یه دیگ پر از آب روی اجاق بذاره وقتی آب جوشید زن تاجر برای انجام دادن کاری بیرون رفت کچل فورا دیگ رو روی تاجر ریخت. تاجر در حالی که داد و فریاد میزد از جا پرید زن تاجر با صدای فریاد شوهرش وارد خونه شد کچل بون گفت اگه به موقع نرسیده بودم تاجر حتما مرده بود من اونو از مرگ حتمی نجات دادم پس به جای سر سکه باید دیوی سکه به من بدین تاجر که دید نمیتونه از دست کچل خلاص بشه و ترسید که بیشتر از اینها به کچل افسانه ما بده کار بشه ناچار دیوی سکه به اون داد و با خودش عهد کرد دیگه هیچ کاری با کچل نداشتنش افسانه ایرانی کچل و تاجر خسیص رو براتون نقد کردم برگرفته از کتاب افسانه‌های کچل به گردآوری محمد رضا شمس بله افسانه‌های کچل بخشی از افسانه‌های ایرانیه و چه بسا افسانه‌هایی که در میان مردم سرزمینمون به صورت شفاهی موندند و هنوز در کتاب‌ها گنجانده نشدند و منتظر کسانی‌اند که با قلم و کاغذ به سراغشون برند و نذارند که به دست فراموشی سپرده بشن افسانهها ها بخشی از میراث فرهنگی ما هستند. در حفظ، سبت و پاستاشت این گنجین گردشمند بکوشیم و تلاش کنیم هزار افسون کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت ساله ویراستار سویلا کریمی اغدا اجرا مهران بوستی صدابردار ستاره همیدی تاییر کننده زهرا عبدالله زاده تا افسانه دیگر بدرود